هر که به تعذیب دنیا راه سواب نگیرد، به تعذیب آید. گرفتاراید. ولن نه هم من العذاب العدنا دون العذاب الاکبر. پندست خطاب مهتران، آنگه بند، چون پند دهند و نشنوی، باند نهان